بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند به بخشندی مهربان حامی حامی و الكتاب المبين فجعان به این کتابی که قویکش آشکار است. این جانناه قرآن عربیا لعلكم تقبلون که ما آن را قرآن فتیح و عربی قرار سادیم تا شما آن را درد کنید و بیگمان آن در کتاب اصلی نسل ماست که بلند و حکمت آموز است اذا نضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين اايا این ذکر را از شما باز گیریم خاطر اینکه قوم اسرافکارید و کم اوساننا من نبی فی الاولین چه بسیار پیغمبران را که برای هدایت در اقوام پیشین فرستادیم یمیم من نبلینلا ولی هیچ بیانبری به سراغشان نمیامد مگر اینکه او را استحظام میکردند فاهلت نهدم کسانی و را که ننیرو از اینها بودند حلاک کردیم و داستان پیشینیان قبلا گذشت و لئین سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزیز العلیم هر دادانها سآل کسی چکت آسمانها و زمین را آفریده مسلمان میگویند خدا خداوند قادر و دانا آنها را آفریده الذي جعل لكم الارض مهدون وجعل جعل لكم فيها سهوله لعلكم تهتدون. همان ذاتی که زمین داغ باره و محل آرامیش شمال کرده تا. و برای شمال در آن ذهاب افرید تا هداویت شوید. والذين نزل من السماء ماء بقدر فان سرنا بهی بلدت منتا کذالک تخرجون و آن که آسمان آبی پرستاد به مقدار معین و به وسیلی آن سرزمین زمین مردر حیات بخشیدین به همین گونه در قیامت دنده می شبین و الذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما ترکبون به همان ذاتی که همه زوجها را آفرید و برای شما از کشتی ها و چهار پایان مرکبهای قرار داد که برانتبار شدید لِتَسْتَوُوا عَلَى عُّهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا سْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُونَ و تقولوا سبحان الذي سخّر پشت آنها به خوبی قرار گیرید سپس نعمت پروردگارتان راهنگامی که بر آنها سوار شدید متذکر شوید و بگویید پاک و منزه ذاتی که این را مسخر ما ساخت وگرنه ما توانایی <تصفيق> آن را نداشتیم و اینا الی ربنا لمون و ما به سوی پربردگار من باز می و جعلو له من عباده جزءا این الانسان لکفور مبید آنها براوی خداوند از میان بندگانش جزء قرار دادند بیگمان انسان کفران کننده آشقای. ام اتخذ مما یخلق بنات و اطفاکن او از میانی مخلوقاتش دختران را برای خود انتخاب کرده و سران را برای شما و اذا بسیر احدهم بما ضربن الرحمن مثلا ظل وجهه مسودا و هو کضیم در حالی که هرگاه یکی از آنها را با همان چیزی که برای خداوند رحمان شبیه قرار داده بشارت دهند صورتش از فرط ناراحتی سی سیاه می شود و مملو از خشم می کرده آیا کسی را که در زیور پرورده می شود و در جنگ ها حضور نمی یابد و فرزندی خدا نسبت می دهید؟ و جعلون ملائکتا هم عباد الرحمن اینا اشهدوا خلقهم لتكتب شهادتهم و یسالون آنها فرشتگان را که بندگان خدا و یه هم آیا به آفرینش آنها شاهد و حاضر بودند این گواهی آنها نوشته میشه بود بس آن با خواهد خواند شد وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذالک من علم این هم الا یخروخون آنان گفتند اگر خدا میخواست ما آنها را فرستش نمیکردیم ولی به این امر یقین ندارند و جز درو چیزی نمیکویند ام آتینا هم كتابا من قبله فهم به مستمسکون یا ما كتاب پیش از این با انها داده این با انها با انتمسک می جویم بل قالوا انا وجدنا و آنها می گویند ما نیاکان خود را بر مذهبی یافتیم و ما و آثار آنها هدایت شده ایم و كذلك ما اغسلنا من قبلك في قرية من نذیر الا قال مترفوها الا قال مترفوها انا وجدنا همین گونه در هی شهر و دیاره پیش از تو پیانبری انذار کنین در مگر اینکه که سربتمندان مست و مغرور گفتند ما پدران خود را بر مذهبی یافتیم و به آثار آنها اقتدا می کنیم قال اولو جئتکم بی اهزا مما وجدتم علیه قالون پیانبرشان گفت: آیا اگر من آگین هدایت بخشتر از آنچه پدرانتان را بر آن یافید آورده باشم باز هم این کار می کنید گفتند آری، ما با آنچه شما با آن مبعوض شده اید کافرید فانتقمنا من فانظر کیف کان عاقبت المکذبین پس ما از آنها گرفتیم بنگر فوجان کار تکثیب کنندگان چکونه بود و ایز قال ابراهیم لعبیه و قومه ایننی براؤ من ما تعبدون بخاطر بیا بر همزامی که ابراهیم با پدرش و قومش گار من از آنچه شما می‌پرستی بیزارم الذي بصرني مگر آن خدایی که مرا آفریده که او هدایتم خواهد کرد و كلمه او کلمه توحید را کلمه باقیه در میان اولاد خود قرار داد تا بسوی خدا باز کردن بل متعت ها اولئی و آباءهم حتی جاءهم الحق و رسول مبین بل ما این گروه و پدران انها را از مواهب دنیا بهرمند تاقیم تا حق و فرستادی آشکار علاقی به سراغشان آمد وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ اما هنگامك حق به صراغشان آمد گفتان این فهرات وما نسبت به انخافرين وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وگفتند چرا این قرآن بر مرد بزرگ از این دو شهر نازل نشد؟ تاهوم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه و رحمت ربک خیر ما يجمعون. آیا آنها رحمت پربرکارت را تقسیم می ما معیشت آنها را در حیات دنیا در میان آنان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا یکدیگر را تسخیر و با هم تعاون کنند و رحمت پربرکارت از تمام آنچه جماوری میکنند بهتر است ولولا أيكون الناس أمّة واحدة لجعلنا لمن يكفّر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لجعلنا لمن يكفّر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون اگر تمکن کفار از مواهب مودی سبب نمی شد که همه مردم امت واحد گمراه شوند ما برای کسانی که کافر می شدند خانههای قرار می دادیم با سخت از نقره و نردبان های کس آن بالا رواند وبرای خانه‌های آنها در ها و تخت‌های زیبا و نقطه‌گون قرار می‌دادیم که بر آن تکیه کنند. و از حروف و ان کل ذلک لم ما متاع الحیات الدنيا والاخره عند ربك للمتقين و انباء وسایل تجملی بر تمامی اینها مساوی زندگی دنیا و اخره نفس پربرگارت از آن پرهیزگاران است. وقتی هر کس از یاد خدا روی گردان شد شیطانی را به سراغ او می‌فرستیم و همواره قرین او باشد. وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْتَغُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ این گروه را از راک خدا باز میدارند در حالی که گمان میکنند کنند یافتگان داوجتی آفتگان حقیقی آنها هستند تا زمانی که دست ما حاضر شدی میگوید ای کاش میان من و تو فاصله مشرق و مغرب بود چه بد همنشینی هستی تو ولين اليوم ظلمتم انكم في العذاب هرگز این گفتگوها امروز به حال شما سودی ندارد چرا که ظلم کردید و همه در عذاب مشترکید آیا تو می توانی سخن خود را به گوش کران برسانی یا کوران و کسانی را که در زلال مبین هستند هدایت کنی فإِمَّا فا نَزْهَبَنَّ بِكَ فإِنَّا فا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ آنها ببرین حتما آنها را مجازات خواهیم کرد او الذي وعدناهم فإن یا اگر زنده بمانی به آن زذاب آنان بعد دادادین و تو اراعت دهیم باز ما بر آنها ها مثلت فاستمسك بالذي أوحي إلیك إنك على صراط مستقیم آنچه بر تو وحیه شده محكم بكیر که تو بر صراط مستقیم هستی وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون و این موجی یاد آبریی تو و قوم تو و پسودی سعی خواهید شد وَالَمَنْ أَغْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ که قبل از تو سادیم بپرس آیا غیر از خداوند رحمان معبودانی برای پرسش آنها قرار دادیم؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ما موسا را با فِرْعَوْنَ خود بسوی فرعون و درباریان او فرستادیم با آنها گاف من فرستادی فَلَمَّا جَاءَهُ بآياتنا اذا هم منها آجات ما برای آنها از آن می‌خندیدند وما نوريهم من ايه الا هي اتبر من اختها واخذناه بالعذاب لعلهم يرجعون ما هیچ آگه به آنها نشان نمی دادیم، مگر اینکه از دیگری بزرگتر و مهمتر بود و آنها را با مجازات خوشتار دادیم شاید باز کردند وقالو یا ایوه استا حوضوننا ربک بما عهد عندك اننا لمبتدون. هنگامی که گرفتار بلا شدند گفتند ای صاحب پروردگارت را به عهدی که با تو کرده بخوان که ما هدایت خواهیم یافت فلم موقعی که عنهم العذاب اذاهم ينقضون اما موقعك عذاب برطرف نمی‌ساختیم پیمان خود را می شکستند و نادا فرعون فی قومهی قالا قوم علیسلی ملک مصر و ها تجری من تحتی افلات بصیرون فرعون در میان قوم خود داد و گفت: ای قوم من آیا حکومت مصر از آن من نیست و این نهرها سخت فرمان من جریان ندارد آجان نمی بینید أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا لا یکاد یبین مند این مردی که از خانواده و طبقه پسی به هرگز لمیتا سخن بگو یاد برطرم فلولا القی عليه اسورت من ذهب او جاء معه الملائکة مخترمین اگر راست گویید چرا دست دستبندهای طلا به او داده نشدند یا اینکه چرا فرشتگان همراه او نیامدند او قوم خود را تحمیق کرد و سوی اطاعت کردند بیگمان ایشان مردم فاسقی بودند فَلَمَّمَا أَسَفُونَ تَقَمَّنَ مِنْهُمْ گامی که ما را به خشم آوردند از آنها امتقام گرفتیم، و هم را کردیم. فَجَعَلْنَا سَلَفًا وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ آنها را کامن در عذاب و عبرتی برای دیگران قرار دادیم به نام ابن به مثلا إذا به نام خدا. به نام خدا. به نام خدا. زده نام خدا. به نام خدا. به نام خدا. به نام خدا. به نام خدا. به نام خدا. و گفتند آجه خدازان دسترند یا او ولی آنها این مثل را جز از طریق جدال برایتون نزدند آنها روح کی نتوز و پرخواش او فقط بنده بود که ما نعمت به او بخشیدیم و نمونه با برای بنی اسرائیلش قرار دادیم و لو نساؤ نجعلنا منکم ملائکتا فی الارض یقلقون به هرگاه بخواهیم به جای شما درتمین ملائکه قرار می دهیم که جانشی شما کستند وَإِنَّهُ الْعِلْمُ لِلْسَاعَةِ فَلَا تَمْتَعُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هادا فراغ مستقیم با اون سبب آگاهی بر روز قیامتا هرگز دران تردید نکنید و از من تیردی کنید که این راه مستقیم است وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانِ این لولک ما دوم موبی. با شیطان شما راز را راست خدا باز ندارد که او دشمن آشکار شما ولم ولما جا ایت بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولي لكم بعض الذي تحتنفون في فَتَقُ الله و هنگامی که عیسی با دلایل روشن به سراغ آنها آمد گفت من برای شما حکمت آوردم و آمده ام تا طاره از اموری را که در آن اختلاف دارید بیان کنم تقوای الهی پیشه کنید و از من اطاعت نمایید ان الله و ربي و ربكم اعبدوه هذا بیگمان خداوند بند من و پربرکار شما او را پرستش کنید که را راه. را همین هم تختلف الاحزاب من بینه قویل للذین ظلم من عذاب یومین علیم ولی گروه از نیان آنها ظهور کردند که اختلاف نمودند. وای بر آنها آن ها که ستم كردهند از عذاب روز درناک هل نظرون الا الساعة ان تأتیهم بغتة وهم لاشرونآن ها چه انتظاری میکشند جز اینکه قیامت ناگهان به سراغ آنها آگرد در که خبر ندارند ندارن، ندارن، ندارن، ندارن، ندارن. دوستان در اندروز دشمنی یک دی مگر فرهی سکاران ای بندگان من امروز نا بر شما و نا اندوهی می شدید بآیاتنا آنها که با آجات ما ایمان آوردند و سفلین بودند نهاویت ارخل الجنت انتم و ازواركم تحبرون بارد بهشت شوید شما به همسرانتان در نهاویت شادمانی نطاف علی بصحاف من ذهب و اقوام و فیها ما تشتهیهی الانفس و تلزل اعیون و انتم خالدون غذا و جامهای شراب صحور از طلا گرد, گرد آنها می گتاند. و در بهش آن دل میخواهد و چشم از آن لذت می برد وجود دارد و شما در آن همیشه خواهید ماند و تلک الجنة التي اوردتم بما كنتم تعملون این بهشتی است که شما بارست آن می به خاطر اعمالی که انجام میدادی. دادید فيها فی ها منها کثیرت برای شما در آن می بهای فرابان است فسان تناول می اِنَّ المجرمين في عذاب جَهَنَّمَ خالدون مجرمان در عذاب دوزخ جا به دانه می مانند لَا يُفَتَّوْ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ هرکس عذاب از آنها تخصیف نمی آبد و آنها در آنجا جا در همه چیز معیوسند وما ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُ هُمُ الظَّالِمِينَ ما با آنها ستم نکردیم، آنها خود ستمگار بودند و نادم یا مالک لیقضی علینا ربک، قال انکم آنها فریاد میکشند، کشند، ای مالک دوزخ، آرزو دو داریم، پروردگارت ما را بی داند می شما در اینجا ماندنی هستید لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون بغمان با شما حق را آوردیم ولی کن بیشتر شما از سخن حق کراهت داشته اید ام ابرض امرا فانا مبرم بلکه آنها تصمیم محکم بر ساق گرفتند ما نیز اراضی محکمی درباره آنها دادند ان ان لا سرهم و نجواهم بلا و آنها چنین میپندارند که ما اسرار پنهانی و سخنان درگوشی آنها را نمی شنویم اور رسولان و فرشتگان ما نست آنها هستند می قل إن كان لِوَحْمَانِ بگو اگر برای خدا بند، بود من نخستین مطیع او بودم. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش ما يصفون منظه آسمان ها و فروردکار عرش از توصیف که آنها می و آنها را به حال خود باگذار تا در باطل قطور باشند و سرگرم بافی تا روزی را که با آنها داده شده است ملاقات کنند و هو في الأرض إله وهو الحكيم العليم. أساطير كدرآف من معبود بقسمين معبود بقوق حكيم بعليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. پربرکت و جواد نافذیر است ذاتی که مالک و حاکم آسمان ها و زمین و آنچی در میان آن دوست می باشد و آگاهی از خیام قیامت فقط نزد اوست و به سوی او باز می کردید و الذین یدعون من دونه الا من شهد بالحق و یعلمون آنها را که غیر از او می‌خوانید قادر بر شفاعت نیستند مگر کسانی که شهادت به حق داده‌اند و به خوبی آگاهند. وَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُكَذِّبُونَ با اگر از آنها سؤال کنی چه کسی آنها را آفریده؟ قطعاً می‌گویند خدا پس چگونه عبادت او من حرکت می‌شوی آنها چگونه از شکایت پیامبرت میگوید پروردگار را اینها قومی هستند که ایمان نمی آورند غافل می اصف عنهم سلام اکنون که چنین است از آنها روی برکردارند و بگو سلام بر شما اما به زودی خواهند دانست